عاشق روی جوانی خوش نو خواستم و از خدا دولت این غم به دعا خواستم عاشق رند و نظر بازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم شرمم از خرقه آلوده خود می آید که برو وصل به صد شعبده پیراستم خوش بسوز از غمششم که اینک من نیز هم بدین کار کمر بسته و بر خواستم با چونین حیرتم از دست بشد صرفه کار در غم زوده امان چه از دل و جان کاستم. هستم همچو حافظ به خرابات روم هم جامعه با که در بر کشدان دل نو خواستم